واقعیت همیشه خیلی دیر خودش را نشان می دهد قریبترین تفاوت میان خوشبختی و شادی این است که خوشبختی جامد است و شادی مایه شادی من تا صبح روز بعد که آقای یوشتو با پاکت های دو دانشجوی جدید سر میز من سفز شد بیشتر نفایید و درون مخزن خود شروع کرد به نشت کردن در آن وقت روی نقاشی های بامبیکرامر کار می کردم. و خیالم کاملا آسوده بود که نامه من به خواهر ایرما سالم توی پستخانه جا خوش کرده است اما به خواب هم نمیدیدم که با این واقعیت تلخ روبرو شوم که در دنیا دو نفر هستند که در تراهی از بامبی کرامر یا آر هاور ریچفیلد هم بی استعدادترند من که دیگر بیتاب شده بودم برای اولین بار از هنگام پیوستن به هیئت مربیان در اتاق مربیان سیگاری روشن کردم ظاهرا کارساز بود و دوباره نقاشی بامبی را به دست گرفتم اما هنوز سه یا چهار پک نزده بودم که حس کردم آقای یوشوتو چشم من دوخته است سپس شنیدم که صندلی خود را عقب کشید و پی بردم که حدثم درست بوده است مثل همیشه هنگامی که بالای سر من آمد از جا برخاستم. با نجوایی عصبانی کننده برای من توضیح داد که شخصا با کشیدن سیگار مخالفتی ندارد اما افسوس که ختمش مدرسه با سیگار کشیدن در اتاق مربیان مخالف است عذرخواهی طولانی مرا با حرکت بزرگوارانی دستش رد کرد و به طرف دیگر اتاق که از آن او و خانم یشوتو بود برگشت با وحشت تمام به این فکر افتادم که چگونه می توانم سیزده روز آینده را به انتظار دوشنبه ها که قرار بود پاکت خواهر ایرما برسد به سلامت به آخر برسانم